دفاع می‌کنم، دفاع می‌کنم، دفاع می‌کنم. یا بقیت الله سیدی مولای اغسنا و ادرکنا اجرنا و عدفنا نحن ضیوفک سلام علیکم جمیعا عوضو بالله الله من اشریتان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و جسر لی امری و حلول آقدت من لسانی یفقه قوی الحمد لله رب العالمين الصلاه و الا خاتم المرسلين نفوسنا ابو محمد و آل اهل معصومین سیما مولانا فقيه الله فی جعلنا الله فدا و رزقنا الله رضا و لعنوا علی اعدائهم اجمعین قل النبلي الله الذي نزل الكتاب وهو يتبنى الصالحين ولوله ماه از حسین است سید الشهدا بظاهر همه کمالات است و امامان ما همه امام متقینند. تسو بهترین فرصت برای توسعه به تقوا ششتن در برابر گناه دلکندن از زخارف دنیا شناسایی مسئولیت‌های الهی در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی لازمه تقوای الهی است کسی که تقوا ندارد در دنیا و در آخرت پناه ندارد. ان ندل متقین مفازا. مفاظ جای که انسان به اونجا پناه میبره فوزش به اونجاست. خلاص میشه. این برای متقین است. کسی که تقوا ندارد اقبت ندارد. کارش قاطعه ندارد از این جهت یه چله ای رو از روز اول محرم شروع کنیم شرمام زریعای قاضی مقام مقامه شریف از روز آشورا چله زیارت آشورا رو توصیه می فرمودن تا عربعین ولی آغاز محرم آغاز سال است سال است، ما باید دلمون رو تجدید نور کنیم قبارها رو از دل بریزیم امام حسین اکسیر است کاروان عشق در راه است جانمانیم تو خونمون تقوی داشته باشیم اعضای خانواده و هم ظلم نکنند حریم ها را نگه دارند در ارتباط با همسایه ها همسایه آزاری نداشته باشیم الله الله فلتیران در بوزدن در پارک کردن در ایجاد سراسرده کردن به همسایه آزار دادن رفتارهای نامناسب داشتن اینها خلاف تقوا باید تقوا را از درون خودمون شروع کنیم از خانواده خودمون شروع کنیم قو انفسکم و احلیکم نارم و قود هم همناس و هجاره کسی تقوا نداشته باشه آتش میگیره گناه آتش است رضا اخلاقی آتشه تقوا آتش نشان آعقه نمیذاره آدم گناه کنه قرآن کریم توصیه شنه که هم خودتون آتش نگیرید هم نذارید خانواده هاتون بسوزند هوای بچه هامونو داشته باشیم هوای جوان رو داشته باشیم امروز جوان هوای ماها رو داشته باشن همه تواصی به حق داشته باشیم هفته امرو محروف و نحی از منکر است تواصی به حق تواصی به صبر. اتقال الله و یعلم کمالله الله، پیش تا روزنه های معرفت را خدا روی شما باز کند. تسلیه ترز میکنم حلول ایام اعضای امام حسین علیه السلام را مرحوم عمزدی عباد آقای ملکی تبریزی در کتاب نورانی المراقباتشون میگن با آمدن محرم باید دلدادگان به امام حسین شیعیان یه تغییری در وجود خودشون احساس بکنند بعد میگوین یکی از فرزندان من بدون اینکه بو به او چیزی گفته شود ماه محرم که میاد انگار کسی را از دست داده از آداره. ذا هر قضایی رو نمیخوره مثل ازادارها پیداست که رقبتی نداره آدم ازادار نسبت به خرد و خوراک و اینجور چیزها دل سرده دلش غم گرفته است میگم بچه من بدون تعلیم و تلقین خودش اینجور بود شیعتنا خول قوم فاضل تینتنا و جنوب ما نا حال باه حرام است جنگ با خدا نکنیم گناهان رو، محصیت ها رو، پرونده برای همدیگر رو ملکوک کردن شخصیت رو، ایجاد بدبینی رو، ایجاد نفاق و نمامی رو امام حسین اومده می بریم تو کشتیش بیشینیم از این توفانها خودمون رو نجات بدیم آیهی که به محضر شریف شما عزه کرام مهمانان و خدا تلاوت کردیم امام حسین علیه السلام روز آشورا این آیه رو تلاوت فرمودن که مجموعه همه امور است که در ناحظت آشورا انسان باید با و دست پیدا بکنند. این عالم عالم ظلمات است و تعلقات ما به این عالم هجابهای ماست که جلو بصیرت ما رو میگیرد عوض این که برای خودمون بهشت تأمین بکنیم، مقام اندربی پیدا بکنیم رنگ خدا بگیریم خلیفه خدا بشویم در منجلاب دنیا قوطه میخوریم ما میلولیم و میگندیم و هم پوسیده شدن و در گودالهایی که کندیم افتادن در اون گودالها میشود اما اگر از آغاز با آگاهی تحت ولایت زندگی کردیم خدا را ولی خودمون دیدیم و اولیایی که خدا برای ما معین فرموده انبیا علیه السلام، عمیم اصومین سلام الله علیه معجمعین که اینها حکام روی زمینن مل امام الا العالم و امام و رهبر نیست مگر کسی که عالم به کتاب الله باشد و قائم به قصد باشد و حابس نفسش به ذات الله باشه خودش رو وقت خدا بداند رهبری امت اسلامی رهبری خوبان رهبری خوبی ها در قدم اول معرفت در قدم دوم عدالت خواهی و در قدم سوم دل را از دیگران بریدن و با خدا وصل کردن است رهبر الهی خودی ندارد در وجودش خداست در سخنش خداست در زندگیش خداست همه زندگی او فلش به سوی پربردگار عالمیان است میل شخصی ندارد همه امیالش الهی است امام حسین علیه السلام حرکتشون هم یک خیزش بود یک بیست بود یک زلزله بود و یک انقلاب بود و یک سوره بود هم یک سیر و سلوک بود عرفان بود عشق بود سیر با جذبه های آسمانی بود هم مقابله با فساد بود هم براندازی نظام ننگین مادی بنی امیه بود مقابله با طاغوت زمان بود مقابله با استکبار زمان بود و هم ارائه یک امت صالحی که با امامت حرکت می کند در جبهه امامت و امت وحدت انسجام یک پارچگی توازن همانند بیوت شعر است هنر است هیچ ناموزون نیست مثل یک منظومه میماند. ماند لش شمس و ینبقیله ها انتدرک القمر ولل لیل و سابق نهار و کلون فی فلکن یستحون. جمعیت زیاد نبود ولی هر کدام یک دنیا بودند. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حبیب ابن مظاهر شما همه عالم رو از نظر شناسنامه ای جمع کنید و اعمالشون رو و ارزش های وجودشون رو در یک کفه بگذارید حبیب رو در یک کفه در میان پیرمردها امام حسین چه تجلی در حبیب کرده است در نوجوان ها نوجوانی چه قسم میخورد خورد الموت من العسل مرگ براش کابوس نیست مرگ پیوستن به است مرگ پوست انداختن است مرگ خلاصی از زندان است مرگ لقاء احبه و دوستان است و مرگ رسیدن به خداست، است احلام مرگ بابا شیرینه این جوان شما این رو مقایسه کنید با جوانهایی که تو این وادی نیستند در وادی هوا و هواستند سرگرمی های زایه کننده عمر دارند شما کجا مثل قاسم ابن حسن رو در تاریخ پیدا می و آیا این جوان با عالمی قابل مقایسه است هاشون رو ببینید عبدالله یک نوجوان است اما میگوید بدون امام نمیتونم نفس بکشم و الله لا و فارق و قسم میخوره این ولایت مداری این پروانه امام زمان بودن این طاقت دوری و تراو امام را نداشتن کجای آلم شما مثلی برای او پیدا میکنید و از بیدار شدگان آقابت به خیرها کسانی که بصیرت نداشتند ولی نفس امام نظر امام اونها را متحول کرد مثل زهیر ابن بعضیا بعضی ها در انقلاب ما از کرده های خود پشیمانند مثل عمر سعد میمانند اماره صد در لشکر از تعمیر بود در جنگ صفین با دشمنان علی مصاف داد و تیر خورد و اگر اون روز تیرکاری بود کنار جنازه طاهر و مطهره اماره یاسر قرار می گرفت جزء انوار درخشان آسمان هدایت برای همیشه معرفی می شد اما خب به دنیا او را از علی جدا کرد نه تنها جدا کرد این جدا شدگان، این پشیمان شدگان انقلاب آقابت کارشون به بد جایی می کشد دستش به خون عبا عبدالله حسین آلوده شد به پاکترین خونها دستش و آغشته کرد ولی به دنیا هم نرسید همه کسانی که با دینشون با امامشون بی اچکنی کنند بی وفایی کنند آقابت عمر سعد رو خواهند داشت امام آسین در موردش نفرین کرد و بحک الله الفراش پرمود امیدوارم در بسترت از زبه بشری و همین جورم شد و خون امام حسین رو ریخت که به ریاست برسد اما آمد یا بعضهم همین که اینها با حق مصاف دادن بعد به جان هم میفتند دعوای حکومت دارد ابن زیاد از عمر دستور العملی که داده بود برای قتل حسین مطالبه کرد عمر سعد گفت که این سند است در دست من نخوام به اجوزه ها نشون بدم ابن زیاد هم از اونا نبود ازش گرفت عمر سعد با پشیمانی از دارال اماره بیرون آمد گفت هیچ کسی رو خسارت دیده تر از خودم نمیدانم هم به قتل حسین اقنام کردم هم از دنیا خیری ندیدم این نظام سلطه این نظام استکبار همان ابن زیاد و بنی امیه زمانند. هر کسی به خاطر اینها از دینش کم بگذارد و از بیعت با امام زمانش کوتاهی کند بدانید که نه دنیا دارد و نه آخرت <تصفيق> خوش اما اما دلدادگان به ولایت این زهیر است زهیری که سابقه حضور در جبه مخالف امیر رو پیدا کرده بود در سطح مخالف بود اما چی داشت که خدا خریدارش بود وقتی نفس امام حسین بهش خورد او می که من حیفم میاد در این بازار عشق که وارد معامله با حسین شدم چرا متاعم کمه یک جان که در این بازار ارزشی ندارد اما واقعیت وجودش بیانی رو در محضر امامش مطرح کرد که تقریر امام تصدیق اوست می اگر من هزار بار کشته شوم و باز هم زنده شدم هزار بار مرا بکشند، بدنم را نه نبکشم من به بهش بروم. من دنبال بهش نیستم آرمان من حسین است عشق من حسین است آینه خدای من حسین است اگر هزار بار کشته شوم بعد از کشته شدن دوباره زنده هم کنن بسوزانندم باز هم کم است هزار تا جان هم برای کم است امروز سرداران ما سپاهیان ما بسیجیان ما در این هفته دفاع مقدس اگر سختی ها تحمل کردند اگر ایثارگر شدند اگر جانباد شدند، اگر خانواده شهید شدند، اگر در بدر شدند، اگر با همه ایثارها و مجاهدت که کردند، امروز سهمی در حکومت و پست و رفاه اینان ندارند، نه تنها پشیمان نیستند، میگویند ما کم داشتیم و کم آوردم یا ایها العزیز ما و با الظر و جئنا به بضاعت مزیاد و اوف لنالکیل و تصدق علینا دوران دفاع مقدس یک رشهی بود یک نمی بود یک جلوهی بود از حقیقت آشورایی امام حسین علیه و السلام و ما کان الله لیدر المؤمنين حتی یمیز من الطیب در آغاز بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و حوزه‌های های علمیه است من از مسئولین کشوری خصوصا از مسئولین آموزش فرورش و وزارت علوم دستندرکاران جوانهای دانشگاهی و حوزه‌های علمیه با همه وجودم تقاضا می کنم بچه ها را با امام حسین آشنا کنید با هشت سال دفاع مقدس آشنا کنید دفاع مقدس یک چشمه جوشان است یک زخیره الهی است یک دریست از درهای بهش باز شد و این در بسته نشده است روحیه امقلابی شهادت طلبی کار کردن بی توقع سنگر ساز بودن بی سنگر بلایت نداری که در آشورا همه حسین بودن یک حسین نبود یک آفتاب بود و هفتاد و تو آینه که به هر کدام شما نگاه کنید اینم آتواللوف هستم وجه الله شهدای ما همه نماد حسین بودند نمود حسین بودند نور حسین بودند حقیقت حسین بودند این را ما در ایران با به احتزاز در آمدن پرچم ولایت فقیه هم دل مردم با امام چنین بود همه امروز مردم عزیز ما و جوانان عزیز ما امثال شهید حججی ها و نام که به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظماء امام خامنه ای اتش خودشون رو برای حضور در جبه ها و اجرا فرمان های آسمانی ملایت اعلان میکنند که کمم نیستند و ما هم که به شهرستان ها و استانها ها کم و بیش ارتباط داریم و حضور داریم در جمع جوان ها به مد این روحیه نه تنها متوقف نشده است رو به گسترش است هم در فضای معنوی آشورای امام حسین که خلوت با خدا بود تلاوت قرآن کریم بود دعا و نیایش بود نماز بود که عشق امام حسین بود در این جهت جوانهای ما جوانهای فرهیخته ما در اعتکافها و احیاها و در این های امام حسین عشقشون دل عارفانش نشانه ادامه راه امام حسین است و همون جمعهی که حضرت امام فرمودن در یک دست سلا در یک دست قرآن امروز نهزت آشورای ما آمده است مرزها را در موردیده است ما در ایران انقلاب کردیم ولی امروز در سوریه دفاع میکنیم امروز آوازه ما افریقا را در موردیده در نجیری قربانگاهی تشکیل شده است و در جا جای دنیا دلها به عشق انقلاب اسلامی که نشعت گرفته از آشورای امام حسین است میتبد و من خدا را قسم میدهم به ده حقیقت خون پاک امام حسین که الله است به امروز در رگهای ایرانیان جریان دارد به اینها را آشق ظهور کرده است به این قیام را سنگر نشینی سنگر نشینی به عنوان یک استراتژی منتخب برای آهاد مردم ما پیش آمده است خدا این روحیه انقلابی را از این مردم زبان نیاورد چند جمله هم ایام از برای ما مستهین عشق بریزنیم برای مظلومیت قربت حبیب دلان دل به سوزانیم امروز روز همایش شیخ خارگان بود دیدید در سراسر مملکت مادرها بچه هاشون رو بغل گرفته بودند و در اجتماعات عظیمی صحنه دلنگیزی دارن نشون میدن فضای ایران فضای آشوراست مادرها بچه هاشون رو گویا به گربانگاه آوردن می و میگوین حیف حسین جان نبودیم بچمون رو فدای بچه تو میکردیم ولی آمدیم با تو بیعت کنیم من عرض میکنم این پدران و ای مادرانی که امروز فرزندان شیرخوارتون رو به صحنه آوردید و تجدید بیعت با امام حسین کردید خود عزت سید و در اون مکاشفه ای که برای دخترشون سکین خودتون پیش آمد چون این میگوین لیتکن تیام آشورا جمعا تمزورو کیفه <تصفح> است از غیل تبلیه؟ و ان هنگر کاش همه تون بودید خیلی منظره تابلو عجیبی بود تماشایی بود ای کاش می دیدید کیف از از خیل طفلی یه بچه شیرخوار شیر برای یک بچه هم قضا هم و آبه وقتی مادر شیر نداره بچه هم گروز نه هستم ابی عبد الله وقت مقابله نشکر اما ترونه اون کیفیت التلفظ داره, داره, داره چون عجب لعنت این که ادامه لنده این حکومت عربستانی که ادامه دنده را هر ملند مریض را در یمن می کشند دارو بچه و وبایی نمی رسد انواع بیرحمی ها را یاد گرفتند اینجا جایگاه همایش شیر خارگان خودش رو نشون میداد، هر نشون گرفت گلوی نازک رو. و جا تیر بزنن سراخ میکنه اما گره اون نازوک بود و زده ها من الازون و الالازون و من الورید چون قربانی آورده بودم هم حسین قربانیش کردن سرش رو بریدن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يسعون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم سلم و سلم على سید المرسلین عبل قاسم محمد و سيد سید الوسیین امیر المؤمنین علی بن عبی طالب و على تاتمه سیدت نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومصة بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي بالخلف الصالح الحجة القائم آجدی که ال ادک و نا کفیبلادک عسی کم عباد الله به تقبل الله بار دیگر خودم رو و همه از رو بیاد و خدا دعوت میکنم خدا رفیق بیبلی است که جای خدا رو نمیگیره. لحظه انسان یاد خدا نباشه خسارت است یاد خدا انسان رو مجذوب بارگاهش میکنه انسان رو پاک نگه میداره مهمترین مسائلی که این روز ها مطرح هست است در ارتباط با هفته دفاع مقدس سعی کردیم در خطبه اول به مسئله آشورا وصل بشه بعد عرض ادبی کرده باشیم اما اونچه که در این روزها گذشت برگ ننگین جدیدی برای رژیم فاسد ایالات متحده امریکا و سخنان سخیف یک آدم سبک مغز ناحسابی جنگ طلب تندخوی دروغگوی فریبکار است مطالبی که او در مورد ایران به زبان آورد هم فریبکارانه بود هم دروغ بود یکی از جراید امریکا نوشته بود که در صد روز اول دولت اوباما چه دروغ از او ثبت شده است. و این اظهارات تند و فریبکارانه و حاوی دروغ های نشانه مطالبی است که مقام معظم رهبری این مشعل فروزان قرن ما و عصر ما فرمودند که هم نشانه عصبانیت بود هم در و هم عصبانیت و در موندیگی و سبک مغزی او رو نشون میداد اما چرا امریکا اسپانی چرا راهی جمهور سبوک مغزه امریکا کارش به اینجا رسیده است که این جور پرخاشگر این جور توند عصبی صحبت کند امور زیادی دلیل بر شکست این هاست در مندگی این هاست بی سابقه است. در یک سال اول ریاست جمهوری ایشون محبوبیتش کمتر از چهل درصده سی و شیش درصد سی و هفت درصد و با ما با همه مشکلاتی که داشت سال اول ریاست جمهوریش تا این حد منفور نبود. حتی بوش پسر در حد ایشون منفور نبود. خب این دزد از درون شکست خورده است منفور ملت خودش هست و کسی که از درون پشتبانه ندارد پیداست عقده دارد او عصبی می شود دوم که مهمترین عامل عصبانیت رژیم پیدرپی پیدرپه پی شکست ایدئولوژیک هست اینها لبرال دموکراسی رو به عنوان بهشت موعود برای مردم ترسیم کرده بودند و بعد از پروپاشی شوروی قدرت آنانگسیخته ی عالم خودشون رو می دانستند در مقام تشکیل دهکده جهانی بودند اما از اون جایی که فکر نمی کردند خدای متعال انجز بعده و نصر ابده و اعز جنده خدا جند خودش رو اعزاز کرد امام آمد خورشید دین تابش کرد اون چرا که هرگز فکر نمیکردند دیدن واقع شد اینا فکر میکردند دین قدرت رقابت ندارد دین زندگی ساز نیست دین در متن مردم در متن زندگی مردم نقش ندارد دین ظلم ستیزی رو نمی تونه داشته باشه اما دیدند. نوری آمد مرد روشنگری آمد دین رو به صحنه زندگی آورد هم قدرت امریکا را از این کشور تو خالی بود تو خالی بودنش رو اعلان کرد افسانه لیبرال دموکراسی رو باطل کرد دنیای شرق و غرب دست به دست به هم دادند تا با این نیروی دینی تازه متولد شده یا تازه احیا شده بتونند دست پنجه نرم کنند و در نطفه خفه کنند با آشوبهای اول انقلاب نتوانستند نفوذهایی از قبیل افرادی که در حکومت ما سنگر گرفتند اما حاکمیت دین رو قبول نداشتند ولایت فقیه را قبول نداشتن مثل دولت موقت و بنی صدر با اونها هم دیدن با نفوزی داخلی این نور خاموش نشد این رقیب داره جدی میشه داره در دنیا اثر خودش رو میگذاره پیامش به اخسانقات عالم میرسه دلها را مجذوب خودش کرده این انقلاب انقلاب ایران نیست انقلاب مستضعفین است به رهبری ایران در این جهت اینها همه تلاش خودشون رو همون جملهی که حضرت زینب سلام الله علیها به یزید فرمود کت کیدک رسع سعیک هرچی تیر در ترکشداری همه را به کار ببرد اما قسم جلاله خورد و بالله لا تمحو ذکرنا و الله تو نمیتونی یاد ما را مهد بکنی ما مندگاریم و شما رفتنی هستید امام رضوان الله تعالی علیه این قرن قرن مستزفان بر مستکبران است در این جهت آمدن همه قدرت های دنیا ید واحده شدند جنگ احزاب تشکیل دادند مدینه انقلاب ما را محاصره کردند و جنگی هشت ساله تمام ایاب جنگ اقتصادی جنگ فرهنگی جنگ روانی جنگ نظامی علیه این کشور و انقلاب نوپا به پا شد اما معجزه اتفاق افتاد این جنگ هشت ساله برای ما نعمت شد و برای دشمنان ما وبال و بلا شد دیدن عجب دست دیگری در کار با محاسبات علمی نتونستند این مسئله را حل کنند به فکر تشکیل خاور میانه بزرگ افتادن و سه کشور را نشان گرفتند که اراق با ثبابه تمدن درخشان و سوریه با اهمیتی که دارد و لبنان که هم خواستن این سپر خطری که برای مقابله با اسرائیل هست از بین ببرند امنیتی برای اونجا درست بکنند هم برای انقلاب ما در همسایگان خطرهای جدیدی خودشون کنار بشینن تماشا کنن اما دست نشانده های اونها موی دماغ انقلاب ایران می اینها همه تاکتیک ها و روش های سیاسی، علمی، روانشناسی، جامعه شناسی همه اتاق های پکریشون کار کرد اما نتیجه ای نگرفتند به عراق) <تصفيق> عراقی رو که هشت سال وادار کردن با ما جنگید امروز عراق همسایه ماست نه خود ماست این بیاد این 20 میلیون زائر کربلا رو شما ببینید اون وقت شکست فاحش امریکا را هم در بعد طرحنگی در بعد روانی در بعد سیاسی خواهید دید اینا در عربستان با همه نفت و امکاناتی که دارند برای اداره 3000 میلیون نفر حاجی و تجایعی به بار میارن. اما عشق حسین است چه ها می کند این انقلاب حسینی که در اینجا اتفاق افتاده است امروز مرجعیت عراق و الشعبی عراق دولت عراق در کنار ما مقابل قدرت‌های بزرگ دارن با داعش می‌جنگن داعش کاری نیست داعش فرزند نامشروع خود قدرت بزرگ آمریکاست پول عربستان است همه مخالفین انقلاب ما در تأسیس داعش و طالبان و القاعده همه دستشون به خون آلوده است ولی این همه هزینه کردن این همه تشکیلات درست کردن این همه وعده‌ها دادن گفتن تا چند روزی دیگر صد... آقای بشار اسد رفتنی هست چه نقشه ها کشیده بودن هم عراق باقی موند در کنار ما هم سوریه به همدلله بشار اسد ریشدار شد مردم در کنار ارتش قرار گرفتن نیروهای جوان به صحنه آم... آمدند و هم لبنان تعیین کننده است الله لبنان از معجزات انقلاب ماست ریشهدار است مندگار است قدرتمند است ابرقدرت است و پانی کننده اسرائیل خواهد بود انشاءالله این ولایتی که خدای متعال نصیب ما کرده است و اون روز مردم عرب خودشون رو محروم کردند، این گر است این سهر قدرت های بزرگ را یکی بعد از دیگری ابطال خواهد کرد ما در شرایطی هستیم وقتی رهبر کشور روسیه میاد خارج از رسوم دیپلماسی اول به محضر رهبر عزیز ما میرود و با مقدسات ما ارتباط برقرار میکنند و در جنگ در با داعش در کنار ما قرار گرفته است همه اینها سرفکندگی و عصبانیت برای امریکاست او در مسائل اقتصادی امروز بدهکارترین کشورها امریکاست او به ما میگوید شما زندانی دارید این بسلوی بهمن ما این روز قدس ما این اربعین ما این نمازهای جمعه ما این حضور عزتبخش متن مردم ما زیر پرچم ولایت در تمام مقدسات دینی ما این پیروزی ماست و شکست شماست امروز کشور امریکا و آقای ترام بدهکارترین. رژیم در عالم هستش و زندانیان امریکا بیشترین عدد رو به خودشون اختصاص دادن به خصوص این جنگ نژادی که در داخل کشور هست و گسل جدیدی که ایجاد می شود این رژیم مغرور توخالی مدعی دارد آب می شود و اسلام ما یریدون علی یطف اونور الله و الله متمموره دارد میرود که قدرت لایزال معنوی و اخلاقیش دنیا را زیر پرچم ولایت در بیاورد به این پرچم اقتدار با دست همین رهبری به دست مبارک صاحب اصلیش امام زمان ارواح فدا تحویل شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلی العظیم و علیکم ورحمة الله چند جمله بین نماز و خطبه به مستجابه نماز جمعه خوّک من رو داره خداوند تازه رحمتش رحمت برای شما باز کرده نه سالی که و که بسم کرب عظیم العظم محمد معلی و فاطمه و الحسن فاطم و الحسین یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله, الله, الله, الله خدا با عظمت نبیت اعمه خدا به خون پاک شهده های کربلا و شهده عزیز خودمون امام زمان ما را برسان پرچم این انقلاب را با دست رهبر عزیزمون به ایشون منتقل بپرما تلب مبارکش را از ما راضی بگردان نسل جوان ما را به سامان برسان مشکلات اقتصادی ما را فرهنگی ما را با قدرت قاهره خودت بر طرف بفرما مردم شریف ما را در مسیر امام مستهیم زیر پرچم ولایت تا ظهور ثابت قدم بدار بار الله آسایی پربرکت رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت با کفایت و کرامت تا ساحل ظهور امام زمان در هدایت کشتی انقلاب مستدام بفرما دشمنان ما خصوصا شیطان بزرگ و رژیم فاسد ایالات متحده امریکا و سهیونیزم قاسب و جعلی و تروریست های تکفیری را و نفوزی ها و فریبکار کارهای داخل را از سر راه ما بر و السلام علیکم و رحمه.